اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد عوضو الله من الشيطان لعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم صبح شما به خیر ما در مسجد سخنرانی کرده بودیم خودمون مسجد جالبی آلا آره پلوه آمدیم بلدیم تو مسجدی میوهی در موردیم معماریش منظوره خب او جلسه پنجمه بود رسیدیم به این فراز که سم جعل تاجرا محمد صلی الله علیه و آله عجل عجل مبدت في راج مفصل صحبت کنیم فقول في قلت, قلت لا اسالكم عليه اجرا الا المبده في الغربه و قلت ما سعالتکم من عجر, عجر فاولکم و قلت ما اسعالکم علیه من عج الا من شاعن یتخذ الارب بهی سبیلا اینو مفصل صحبتی هم چند جلس هم طول کشید و کردیم خداوند خدوبند متعال با این عجر معنوی که هیان بر برد ببره بر و بر هیچگاه عجر مادی تناسبی با اون زحمت معنوی نداره هیچی این دنیا فانیه آیات و قرآن سراحت میفرماد ولی آخریت و خیرون و عبقا نمیشه بیاد بگیه که با عوض این کاران بیاد به چند تا آدم معمولی مثل خودتون ولی دو تا آدم های خوبی هم. مثلا احتمال گناه هم دارم ممکنه گناهکارم باشن بیاد مبدت اینار رو داشته باشین یا مثلا فهمیم بیاد بفرماد عوض این کاری که من که عوض این عجر معنوی، مثلا فکر شاملاتون رو دوست داشته باشید خودتون ربطش چی نسبتش چی نبا در عمل هم هیچ گناهی کسی از این بزرگواران گزارش نکرد در تاریخ حتی دشمنمش دیگه بدترین چیزی که گزارش کردن گفتن امام حسین قیام کرده علیه که یه آدمی که در طول تاریخ خودشون میگن کسیفتر از این تو ما به خلافت نرسید. یزید. بزرگترین ایرادی که میگرن همینه دیگه میگن و خروج کرد بر حاکم وقت و خلیفه پیغمبر میگن چیکاره بود؟ خودشون میگن که شعر میخوندن را لعبت هاشم و بل فلا خبر جا بلا وحید ناز که بنی هاشم با حکومت بازی کرد نه خبری است نه پیغمبری است نه خدایی نه همش فیلمه خودشون میگن تو فلان جنگ به خاطر خانوم بازیاش کلی از سپاه اسلامو به باد داد رفت. به خاطر یه شبیه جا بیشتر بمونه فلان کارو کرد. کل سپاه اسلام فلان با بیماری رو گرفتن. یه بیماری ویروسی گرفتن. بدنشون عادت نداشت. مال منطقه نبودن، وارد منطقه شده بودن تو فتوحات زمانی ازیده. بخش اعظم اون سپاه اسلام همهشون میمیرن یعنی کلی چیزی که گزارش بکنن اینه جز خیرخواهی جز علمان جز ادالت جز هیچی گزارش نکرده، حتی دشمناشون انتهای دعا هم به همین ارزگردیم محب... فرق محبت و مبدتو دیگه من نمیخوام دوباره بازش کنم دوستان هایی برم برمون جلسه قبلی گوش کنم. انتهای دعا هم همین جوریه از بحث معرفتی که ابتدای ما دعا داریم اول امامت بر من شما جا میندازه از انبیاء الهی شروع میکنه و دقیقا میاد جلو در مورد انبیاء الهی مواردی رو اشاره میکنه اینا اکوش اینا رو بگیرید اصلا اکون میخواد داشته باشه از انبیاء الهی شروع میکنه میاد جلو در انبیاء الهی هم مواردی از هر کدوم رو اشاره میکنه که به امامت اشاره داره یعنی در ماجرای حضرت موسا هارون رو میگه دریا شکافتن رو نمیگه اسایجدا داشتن رو نمیگه همه اینا رو میاره ما رو برای امامت رو آماده میکنه معرفت امامت رو در ما به آلا میبره از آیات،, آیات که هیچ از روایاتی استفاده میکنه معصوم که مورد اجماع شیعه و سنیه فریقه این قبول دارن نمیره دست بذار روی روایت شازی که اونا برگردن میگن حالا یه نفر خودتونم خیلی ندارید اما رواد درستم با جا کسی قبول نکنه خیلی دقیق و فنی همه رو پیش میبره این معرفتی که در من و شما میگیره اون آخر دعا حالا میتونیم عشق ورزی کنیم از که مثلا محبت در اثر شناخت وجود میاد در اثر شناخت وجود میاد اونجا دیگه شما یه محبت نامهی داری اینه عین اینه میگی دعا براش. خیلی عجیبه از خدا میخوای که از خدا میخوای که نظر محبت این امام شامل حال من بشه خیلی جالبه این کم پیش میاد تو ادعیه برعکسش هست یعنی شما از معصوم میخوای که چی اینجا برعکسه چرا چون تو دیگه معرفت پیدا کردی حالا دیگه بر این امام اشک میریزی آخرای دعا عاطفیه میگه این دعا رو در عید بخون، در عیاد بخون، عیاد چارگانه ما. عید قدیر بخون، عید قربان بخون، عید فطر بخون، جمعه ها بخون چون عید از عودت میاد از بازگشت میاد چون شما بازگشت میکنی به اصل خودت سی روز روزه میگیری پاک میشی نوه نو میشی به فطرتت برمیگردی میشه عید فطر حاجی میشی میری در عرفات میگه بزرق، اکبر، بزرق، گناه، تو گناه کبیرها از همه بدتر اونی که شما فکر کنی مثلا از عرفه بیرون آمدیم هنوز بخشیده نشدی دیگه شیطانی دیگه ناامیدی از رحمت خدا رفتی حاجی شدی پاک شدی عیدت مبارک عید قربان بگیر دقیقاً اینجا به من شما میفهمانید میفهماند سلوک اینه مسیر اینه که عید شماست روزی که بیای برین این آقا یه معرفت نامه بخونی متوجه شدی؟ با یه اینال حسن و اینال حسن طال و دم المختول و کربلا عشق بریزی در فراغ این امام عشق بریزی اینجا داریم میری بیرون عیدته هر روز میتونه یه قدیر داشته باشی یه قربان داشته باشی یه فطر داشته باشی هر صبح جمعه با دعای ندبه یک سوال همین دیروز من بعد نماز از دو تربت شد نماز و مغرب شوار خوندیم ازشون سوال پرسته گفتم <سؤال> وقتی من شما میگیم خدای به حق فلان امام به حق فلان معصوم ما رو ببخش این به یعنی چی؟ میدونی به حقی یعنی چی؟ خب خدای به حق خودت ما رو ببخش نداریم جای دیگه به حق اون صفت قفرانت داریم دیگه این چیه؟ این چیه؟ این یعنی همین فرازهایی که ما گذارونیم یعنی خدایا من واقف به استانداردهای تو هستم قبول دارم دارم اعتراف میکنم گناهکارم قبول دارم میدونم این کمبودها و کسریها و نقصانها رو دارم همزمان قبول دارم اون آدم خوبه مدنظر مد نظر شما اون استانداردی که من باید اونطور میشدم ایشان است. شد این دقیقاً یعنی توی اتمسفر و یه کانتکست جدا از شیطان بودن شیطان میگه نه من اشتباه نکردم من خدا همو خوبم رب فب ما اقویتنی تو منو غلام زدی خدایا تو جل رشد منو گرفتی اون میگه نه یعنی اعتراف به این استاندارده میگه خدای نماز و جعل صلاتا بهی مقبوله خدای نماز ما رو به حق اون آقا قبول دید چون نمازی من خوندم خودم واقفم نماز نیست بازی کردم وزوم آب بازی بودی خودم خموراز شدم تو نماز حواسم صد جا میره من واقفم قبول دارم این نماز نیست نماز را علی خواند. نماز را ظهر آشرا،, آشرا حسین ابن علی علیه خواند. مسلام که استاندارد اوست مبنا اوست شاخص اوست خطکش اوست من اعتراف میکنم این اعتراف میچسب کنار اون صفت ارحم و راه خدا ببخشش قبول داره خط رو میشنسه مسیر رو میشناسه، سبیل رو میشناسه. حالا با ده تا سرعت اومده اینجوری کجه کله اومده اما درست داره میاد فهمیده مقصد کجاست این از زمین تا آسمون فرق میکنه با او احمقی که اصلاً مسیر رو قبول نداره با دیویسو سرعت برعکس دور میگیره بر دیگه بابا دیوانه این دیویسو صورتی تو رو داره از هدف دور میکنه از مقصد دور میکنه اینه من نمیخوام ریز شدن تو معنای لغاتو نمیدونم چه و چه و چه شما را از این هدف کلی و این فضای کلی و این هندسه کلی دور بکنه اینو اصل چیزی که باید بگیری همینه نه از این دو از کل دینت همینه اصلا معنای اهل بیت یعنی همین یکی از کارکردهای اصلی اهل برای من و شما اینه که خجالت میکشم خدا وقتی میبینم چیکار کرد برای دین تو ما و 10000 تومان پول اون او استاندارد و او اینها را معجزگونه انجام نداد. او اینها را معجزگونه انجام نداد. قشنگ مثل آدم های عادی تشنگی کشید. قشنگ مثل آدم های عادی سوار اسب شد، جنگی، دوید رفت. قشنگ مثل آدم های عادی از این بود. نه که آدم عادی باشد. اما او برای که حجت رو بر ما تمام کند باید همین گونه عادی این کار را انجام بدهد. بعد بگیم امیرالمومنین المومین کشید بعد بگیم امیر, المومن. امیر المومن برای آن که بعدها دهان تمام مسئولان اسلامی در طور تاریخ بسته شود و غیر اسلامی بر روی خاک نشست ادالت رو در نهایتش اجرا کرد پر ارزن از دهان ای نگرفت آن هم در زمانی که از مصر تا سرحدات چین پاکستان پاکستان امروزی سند تحت حکومتش بود اشراف بر مفاسد اقتصادی داشت تا آنجا که ناظر بازار اهواز رو میدونه خرجو گرفته ناظر بازار اهواز نه حاکم اهواز که <استان> اهواز همین الانش شهر اون موقع توی یه کشوری بسم ایران دقت کن او خودش 17 تا کشور امروز 17 تا کشور من نقشه گفتم شمردم حالا کمتر تر بیشتر شد بعضی موارد اختلاف وجوم کردن آقا امیران بر مصر نشد امراس نذاشتیم نمیدونم چی شد 17 تا کشور کم تر بیشتر امیران حاکم بوده بعد آمار یه دونه شعر با چی با شبکه uyun با علم غیب خیر خیر تاکید میکنم خیر علم غیب ندارد، دارد اشتباه نکنید اینا انقدر گیر میدن به ما مجبور هر چیزی 20 بار توضیح بدیم خدا از سر تقصیراتشون بگذره واقعا ایمان فیلمان بگیدم دیدی این گفت امامیرامل مقیب ندارد نداره باد ما بفهمیم جا بیفت پس این معرفت نامه برای اینکه اون آخر بتونی عشق بازی و این استاندارد رو میدونی دقیقا همین عشق و محبت میشه سوخت این ماشینه که داری با ده رو باش میری کجا گل میری یه لاس گذن پنجر ریپ هم میزنه و سه کار میکنه اما بنزین داره سوخت داری تو ماشین بدون سوختم به درد نمیکن خاموش هم باید و این کم نگیرید ع عید من شماست این دعا درست خونده بشه یک بار مرور میکنی کل اعتقادات رو استاندارد ها رو دوباره لحاظ میکنی این گوشوه برمیدارن دوباره برمیگرن با علا تستانداردش ریست فکتوری میکنن. برمیگرد به تنظیمات کارخانهش فترتش، جهد فترش. باید جشت بگیره. باید لباسه تنش کنه. تو که اینجوری نیست که معلوم شروع شعف داره. یه نفر می‌میره سر و کلش نمیرسه طرف. نه اینکه مد باشه، نه اینکه عرف باشه، نه حسله این کارو نداره خونش میریزه به هم، حالا حسله نداره، افسردگی میگیره درسته؟ اما میه برای ماموسان گریه میکنی، میری شروع شعف داری شروع شعف عید داری بازگشته ای، عودت کردی بعد از روزه ماموسان خندشون میگه شوخی میکنم با هم دیگر. همه هم, هم یه هیست عجیبید بدهید. این چرا؟ اما بعد از فلان مدرسه ختم بروه یکم گریه کن برگرد بیا سر قبرستون برو برگرد گریه کن سردرد میگیری. حالت بعد عصابت خور. یه جنسشون دوتا دنیا متفاوت. اونجا ترسیدی. اینجا به استانداردا برگشتی. ریسیت شده گوشیت جون گرفته. نرم افزار اضافی بیخود پاک کردی جون گرفته سرعتش رفته بالا امینه از قضا این اعیاد رو هم که برگزار می‌کردن از قدیم الایام مهم گوش کنید کجا برگزار می‌کردن در محضر بزرگان شاه و شاهان سلطان و سلاطین می شست رو و تَق می‌اومدن اد جلویشون عید نوروز و تبری عید تبر گفتن عید نمیدونم چه جو عید تبر گفت حتی مسلمان‌هاشون هم همین جوری بود ناصر الدینچه ها میشه سمیده همی عید فلان ترمی گفته. درسته؟ هدایی می آوردن شاه منصور دوانیقی عید برگزار مراسه می گرفت هدیه می آوردن به امام صادق گفت شما بیا هدایا رو بگیر ازداد فرمود که من تمایلی ندارم بعد او گفت منباه به این سیاست کشورداری و مسائل سیاسی و رعایت سری از پورتوکل ها بر بحثای نظامی است. حضرت آمد نشست. تمام این حدایاری که دادن بعد. یعنی اینا مال خود شما. یعنی برای امام صادق. آخرین نفری که آمده بود. اصلا همه فقیر فقیر بود. حضرت اینکه میخواست بلا با همه این حدایار مال شما. بعد دو بود. این آ... تو این دعا آخر شما می‌فهمون که امیر و سلطان شما یاد. تو چی هدیه برات بیارم؟ پول بیارم؟ خودم تو این دعا خوندم، یادم دادی که ما اسال کمالایی من عجر. خودت به ما یاد دادید، خود شما خانواده به ما یاد دادید تو این دعا که شما دنبال زخروف و زبرج این دنیا نیستی تو همین دعا یادموند از زهد فی درجات و حاضر دنیا دنی اینجا چی میانه؟ هیچی دیگه نمونه جز محبت میگه عشقم آمونه سند محبت گریه است ما خودم تویم شبکای اجتماعی مثلا میبینی کلیپی پخش میشه یه بچه ای مثلا هم چمیدم بابا شو یه ماه نبوده نمیدونم چی نمیشته یه حوی این بچه میزنه زیر گریه منو تو هم میبینه میشه محبت کجاست؟ محبت اونجاست که دوریه نفر ما رو ازیاد کن اگر دوریه کسی ما رو ازیاد نکرد ما باشه محبت ندارم آن رو دلم تنگ شده و همین سازی ما ایرانی هم خیلی زیبایین لفت دسته استفاده میکنیم تو زبان فارسی. شاعران است. آنها می آیمیسیو. گمت کردم. که کردم. خب بعدش چی شده؟ یه دلم تنگ شده. این دلم داره می ترکیه برازن. خب چیکار کنیم؟ اینجا دنبال کسایی می گردی که نشونه ای از اون آقا داشته باشن. درسته؟ تو دای ندبه جمع می میگه همین آقای که الان بقیل لست من نشسته، همین که بقیل لست من نشسته، این میدونه که این هم آشاغ آن آقاست. هم تو مسیر اون آقاست. بعد می‌گیم، میای با هم گریه کنیم، حل من معین. میایم به هم کمک کنیم، با هم عشق بریزیم. اوتیل و معه عویل و البوکا بزنیم یا زج زاد جون یا جلاد جون زج یعنی بزنیم عجه بزنیم یعنی دات بزنیم را که ما مخون نودنی نیست که دیدی یریه میکنه بغل دست خجالت میکشی ها بچرها خاموش بشه حس پیدا کنه. یه حسی سی خجالت میکشند آقاین اینجوری بیشتر خون کمتر. ال اینکه که طرف خودی خودی باشه. خودی خودی باشه بغل دست خیالت راحت یکی مثل خودته. اون موقع با همدیه دیگه میشینید داد و بیداد می‌کنید. که از از دست دادن جلو در مسجد وای میستان، فلن هیچ نمیگن فلن مردم داری کنید، مردم به زشته خودتون داد و بیداد بعد که همه رفتن میگه چابی بریم سر قبل بریم بچه‌شون اونجا باباشون مرده مادرشون مرده حالا این بردار رو بش اونجا زج بزنن با هم روزه بخونن با هم روزه بخونن یعنی نه روزه ما حسین منظورم نیست یعنی خاطراتشون رو تعریف کنن بگن یادت اینجوری اینجوری گفت یادتون جی با همه گریه کنن درسته این حس باطشه غیر اون اجتماع غلوب حول این محبت مثل یا آب زلالی تمام این نمک‌ها و ناخالصی‌های وجود ما رو تمامون هم رو حل کنه. پس معنیش اینه عیده بله عید به این معنی برکت یافتن، هدایت یافتن. در ادامه دعا می‌فرماوت فکانو همو سبیل در مورد راه صحبت کردیم ایشون همون اینها همون راهی بودن به سمت شما. و که الی که این اقربای پیامبر، این زبلغربای پیامبر، این اهل بیت پیامبر که صحبت کردیم بحث کردیم راجبش اینایی که متحرن و متحرن اینا که پاک شدن و میتونن پاک کنن این آبی نیست یه میبینید یه لیوان آب برده یه چیزی مثلا چرک آلود به بشوری کسیبی رو بشوری اندازه داره اون سیاهی و اون کسیبی زیاد باشه خود این آب میشه آلوده. نه میفرماد هر چقدر آلودگی باشد میتواند پاک کنه چون متحر است حالا میتوان متحر هم باشه پاک شده است که میتونه پاک کنه معقم است که میتونه معقم بکنه یه چیزی باید ذات خودش میکروب نگیره که بتونه میکروب پاک کنه نمیشه که همون مثلا وایتکسی که داریم میذاری چه یه چیزی زداد آلین دیگه به دینی میزنی که هست من نمیدونم این خودش آلوده بشه نمیشه به درد نمیخوره که با دستمال کسیف شیشه پاک نمیکنن. باید از دور از هر گونه ریبه ای باشه حتی شک و شبهه ای باشه شما این با قلب انسان ها کار داره با ذهن انسان ها کار داره با ادراک انسان ها کار داره آهن نمیخوای پاک کنی. قلب یه انسانی که برای خدا قد عرشش ارزش داره وابش اینجا واب عطفه ول مسلکه لارزوانه یعنی فکانو اینها بودن میتونست بگه فکانو سبیل میگه هم تأکیدن همینها بودن تخصیص میزنه مشخص میکنه یک انحصاری به وجود میاره هم از سبیل علکه دوباره و یعنی چی باز دوباره فکانو یعنی همونا بودن و المسلک الی رضوانک مسلک از ریشه سلوک یعنی کشیدن مسلک مستر میمیه و اینا بودن عامل کشش و کشنده و جاذبه و جزر کننده این نبود که ادی باشه موقع میگی تو این راه میگه که راه تو را میخواند یهو که اینجا وایس دادی یهو قصید می‌کشه خودت بیا بش می بیا, بیا. <تصفيق> مسلک <مثل> اینا دقت کنید ببین طارق از کوبیدن میاد طارق یعنی کوبنده چرا به راه میگن طارق بس که این سوم اسبا و آدما رفته این جاده سفیدتر شده از بالا نگاه میکنیم این یه خط حسابیه سفیدیه تو جاده مثلا داری می‌بینی می‌فهمی جاده آدم رو حالا بزرگ‌تر بشی میگی مال رو آدم رو می‌فهمی این طریقه. مسلک فرقش تو اینه که میگه او جاذب هم هست این نبود شما با پاکوبیدنتون صاف کنید اینجا رو او کشید شما رو برد مسلکه به سوی چی این مهمترین بحث الا رزوانک. به سمت رضایت تو به سمت لبخند تو یه موقعی هست یه مسیری رو میری خشک بهت خوش نمیگذره مسافرتی که بهت خوش نمیگذره یه موقع یه مسافرتی که میگه شیشا رو بده ببین بیرون نگاه کن اصن مقصدو گم میکنه آدم میگه همینجا چقدر قشنگه همینجا وایسیم عکس بگیریم ها تو جاده داری میری اینجا وایسیم چای بخوریم یه جای هست میگه بابا زودتر از این کبیر براهود راحت بشیم بیای رسیم جاده مشهد رو که میرید دیدین شهر و فاصله که پدر صاحب بچه دارن اما میرید تو گردنه های شمال اونجا اصلا دوست داری زمان به ایسته متر مترش وایستی نگاه کنی لذت ببرید آها قصه سر همینه یه اینجا قصه سر اینه که این به سمت رضایت هست یعنی هم سالک این راه که در این مسلک آمده سالک که من و شما باشیم در این مسلک که ما رو فراخوندی هم ما راضیم هم تو راضی خدا با عشق و علاقه میاییم آییم توعن از سر اطاعت از سر کراحت نیست چون قرآن دوتار کنار هم میذاره یه ده اطاعت و از سر که راحته یا ایتو هن نفس المطمئن تو اتمینان داری تو مطمئنی تو شک دیگه نداری خیالت راحته میگه عجب راهی رو انتخاب کردیم الحمدلله الازی جعلنا منال متمسکین به ولای ما چنگ زدی این تناور رو هل نمی الحمدلله میگه خوشحالی مطمئنی شک نداری رفتی دورات رو زدی تو جامعه چی میگیم آخرش میگیم خدای ما اگه از اینا بهتر پیدا میکردیم اونا رو واسطه قرار میدیم سراغ اونا میرفتیم ما از اینها بهتر گیر نگوردیم بعد 1400 سالش هم مشهوده که از اونها بهتر نبودن یه نگاه کن دنیا رو مسلمانه بی غیرت رو ببین ببین تو ورژنی که علی ابن عبی طالب توش نباشه چی در میاد تهش. هنوز که هنوز اسمش پناهگاه مظلومان دنیا تنها نگاهشون امیدشونه اینه که علی و اولادش کمکشون کنن <تصفيق> علی و محبانش علی و شیعانش کمکشون کنن خاقن تو دل آدم نشه وقتی نام و مبارکش برده میشه هنوز هم همون ویل کنیسه حرفا نبود نه دینی هست نه خدایی نه پیغمبر. همه این رو فرس علکی بود باش، علل ارز نگاه کنیم. روز زمین نتیجه امروز رو ببینیم. بینیم بب... بب... کی... چه کسی دنیا امید داره؟ پیدا کرد به ما معرفی کنیم. نیست. یا ایتو هن نفس المطمنه ارجعی الارب بکر. ارجعی برگرد تو مال همینجا بودی. انا لله و انا راجعون، رجوعه، یعنی قبلا اونجا بودیم. ماز بالاییم ما بالا می رویم. ارجعی الاربک چطور؟ کراحت؟ سر صبح مدرسه رفتنمونه؟ سر صبح سر کار رفتنمونه؟ راضیت مردی. چقدر قشنگی من راضی باشم توی خدا هم راضی باشیم من ازتون راضی هم شما هم راضید شما هم لبخند رضایت بر لب دارید ببینه با عبدالله برای چی یه ای آیه ماله موسیقی یونیک دیگه اصلا یه چیز آفریده یه دونه این تو گودال تو اون همه سختیات اون همه بیحالی اصلا آدم شروع میکنه بی بیرب زدن هستن دست خودش نیست دیگه الهی لا معبود سواک معبود جسد نیستا این سر و صداها این که بچه‌م اینجوری دستم رفت اینا حواست من از تو پرت نمی‌کنه اینا همش مال تو اینا برای تو بوده خودت می دونی من تسلیم امر تو ام تسلیما ل امرک ایناش،, ایناش خوبه اما شاه همینجاست رزم به رزاک اینکه تسلیم هستم نه که اصله سمت گرفتن گرفتند تسلیم هاگه یه لحظه طرف برگرده برای این رو گرفتم این تسلیمی نیست راز. چون وقتی شما اون محبوبتون رو میخواید محبوب اسمشون یعنی پپ دارید بهش لازم نیست بگه بعد اصرارم میکنید میگه نه بیان رو بگید بردو ببر بردا ببر میگه نه دست دردم رو تحارف میکنه میگه نه میگه نه من میرم میگیرم من دارم دروغ میگی من دوتا دارم شروع فقط هدفت اوست فقط هدفت اوست با تمات کمال رضایت اینو میدید مهارو خودمون رو دارم مثال میزنم حالا اونجا شما فکر میکنیم مثلا به یه خورده مثلا زبونم هم دو چطر زره تردیده حضرت زینبش داره یاد میادیم آقای تقبل من نازل ولی میکمه بمیپذیری مقام رضایت یعنی که حاصل چیه اعتماد و اتمینان هر که میخواب بکن, بکن. میدونم بهترین کار رعیت و هن نفس و چی چی مطمئنه حانه روح آرام یافته ای جان آرام یافته در ترجم احادیث معراج خیلی زیاده به حدی که اگر جماع وری بشه شاید یک کتاب هفت سایستر صفحه بیشتر هم میشه احادیث معراج آنچه پرمید در معراج خیلی زیاده اونجا پرمید میفهمه خدا من این گفت یا احمد یا احمد ناس. مثلا نگاه می‌کنه یکیش می‌گه یا احمد من بعضی از این بهشتی‌ها هستم یعنی اینجا اینا به مقام رضایت رسیدم کجا اینا رو قرارشون می‌گم؟ رضوانک می‌خواهد بفهم کجا این جایی هستن خوب دقت بکن. روزی هفتاد بار اینا رو من نگاه می‌کنم روزی هفتاد بار یعنی دائم روزی هفتاد بار با اینا حرف می‌زنم و هر بار که این کار رو می‌کنم رزقشون رو یعنی روزی هفتاد مرتبه این هفتاد هم باید یعنی خیلی زیاد فقط صفحاً یه عدد برای تقریب ذهن دیگه چون مقیاس های اونجا مقیاس های اینجا نیست یعنی روزی هفتاد بار رشد به سمت من خدای بیناهای هم. اونجا رزقان هست و یعنی چه تعین مسیر تو دعا داره میفرماد الی رضوان میگه اگر این مسیر رو درست بری این مسلک رو بچسبی الی رزوان تهش رزوان خداست بدونی ته اونجا کجاست حوری و قوری و موری و اینا بزه کنار عالی ترین است که مخلوقی تخیل کنه میتونه بهش برسه قرآن براتون بخونم وعد الله للمؤمنين والمؤمنات خدا به مردان مؤمن و به زنان مؤمن به شما وعده داده فقط ما نیستیم جنات تجریم تحت تحتها الانهار آقای یه نفر دیگه خیلی این دنیا بخواد اشغال کنه کارش را بشه یه خونه آنچنانی قصر میسازه برای خودش رودخونه اختصاصی داره از تو خونه‌اش داره رد میشه هیچ کس هم مزاحمت براش به وجود نمیاره آه. لم میده آفتاب میگیره بعد میره زیر سایه‌اش نمیدونم اینه دیگه اینه. الان میخوای بگی خیلی پول داره میگی میدونی هزار متر کجا داره از وسط خونش آب رد میشه دقیقاً برمن شما بفهم بعد هم مثال بزنم برمن شماست برمن بر شما خوبید خالدی نفی ها زاینو نیستش که ازش بگیرن دو روز اونجا مستجر بشه بمیره تحویل بده بره یه متر اینجا خلود تا همینجاست و مساکن طیبتا فی جنات عدن ادر امارات های نیکو و در نیکوب پاکیزه بهشت عدن منزل دهد عدن یعنی چی عدن یعنی استقرار معدن که میگن یعنی بری از یک جایی که محل استقرار یک چیزی از اونجا تکون نمیخوره یه چیزی در بیاری برای میگه معدن این هم دوباره همون یعنی استقرار یعنی حس و این یعنی خلد و فرمود اینجا اسم ععد یعنی اینجا مال خودته خیال تخت هیچ کس بیرونت نمی کنه هیچ کس حالا خدا وکیل خریت نیست به خاطر سال اینجا چرا <تصفيق> خراب کنه او جه به خاطر مثلا یه متر خونه مثلا اینجا ده هزار توم هم هزار توم کمتر بیشتر بخاره هزار جو پدر سوختگی بازی در بیاره برای گرونتر گران، بفروشم تر بخرم پولش رو دیرتر بدم چکشو فلان کنم عجب یه بند خودوی مدت ما کار میکنیم مسئول اون بود بعد داده بودیم پول منم، پولشم رفتم تأمین کنم بذاشتیم تو حساب بعد گفتیم آها، گفتیم چک به تو بیاد بایی سادر کم بیاد برو من مثلا ده برج بود دیدم، نوشته آخر برج گفتم برش 20 روز اقام انداختینو پول بود تو حساب، ما اون پولم دست نمیزنیم نگه برای او اصلا تأمین کردیم گفت، هر چی دیرتر بهتر گفتم مزخرف کی به تو یاد داده؟ گفت بازار گفتم خواهی تو سر تبدال از ما میفهمی میفهمند عرقش خوش نشده باید اجرتشو بدی خب چه تو دنیا های متفاوته این از چیه همین و زخروفه و زبرجا اول دعا گفته کسی این از اول دعا رو آمده اینجا دیگه استاده دنبال همین میگرده حتی این جنات منت هم کار نداره میخواد سری برسه اون تایه ماجره هماره. اس اول من تحت انهار و جنات عدن و میفهمن و رزوان من الله اون دیو مر الاخر است این چیه اکبر این بزرگترین است ذالک هو العظیم این اون رستگاری نهایی فوز عظیم عظمت داره رستگاری که عظمت داشته بشه این خیلی این عبارت های ها برای عجیب و دقیقیه بعد ببین اینجا خیلی جالبه خدا با من و شما تو آیه شروع میکنه راه آمده از درخت میرخته و آب و این چیزها شروع میکنه خونه ها رو شروع میکنه بعد خدا کنار من و شما وایی میسته استخفار رو جو با دستش نشون میده. میفرم نمیفرم ده هازا زالکه ببین؟ بلنده های اون میخواد نشون بده میباشه تا اینجا او چقدر بره. اونجا رو میخواهم بدن بهت اونجا چیه خدایا که مذر راضیه تو هم راضی تو هم رازی هدف از خلقت همین بود تو این عدنه تو این دنیای دون و پس که ما این جرم و جنس و جسم رو بتونیم رها کنیم ارجعی الارب من همونجا رو میخوام از همونجا که آمدم نکات جالبی دارین آیال چندتش هم بگم زن مرد در برخورداری از پاداش خدا برابرن مؤمنین مؤمنات. و الله میگه به مومن مومن بزرگترین امتیاز بهش خلود و جاودانگی خالدی نفیه ها زندگی آخرت فقط معنوی بگید نیست بلکه مادی و جسمانی هم هست جنات و مساکن و ها هست مسکن خوب زمانی ارزشمنده که جای خوب باشه و مساکنه تهیه بدم فی جنات هد یه خونه آنچنانی بنامه سانا جکوزی دار مثلا تو یالگوزاباد سفلا نیست جاش هم خوب محلش هم محلت خوب باشه یه هم خونت خوبه هم محلت خوبه هم همسایات. شک خوبی انتخاب شده از اینجا رو دقت کنید اینا به معماری میخورد کلیتون سخن معماری اسلامی پنبه اینجا چوب زدیم. از تمایلات طبیعی انسان به آب و سرسبزی و باغ و بوستان و منزل و مسکن برای گرایش به معنویت استفاده کنید مسجداتون یه جای بنوازید یا کیف بکنه. چهار تا نما بذارید، گل و گیاه داشته باشه، زیبا باشه، حس آرامش بده. بعضی از این رستوران برای خوردن که می‌بینی میری آلاچیق و آب و آبنوا و گل و گلدور و اینا بر چی می‌ذارن؟ انگار که دوست دارن محیطو. خیلی از این رستورانا هست، اصلاً می‌بینی قزاش بعضی از غذای جای دیگه بدترم هست، گران‌تر هم هست، اما جاش می‌ری. استفاده کنی. لذت های معنوی بالاتر از لذت های مادی است الله و من الله اکبر به هشتم درجات و مراتب داره جنات تجری جنات عدن رضوان و من الله اکبر اما رسیدن به پادش اختروی و همان رضایت اللهی رستگاری عظیم خب حالا گذر از این سراد رسیدن به اون مسئله که همه که حق ببینیم نحن سرات المستان نحن سبیل ما بودیم اگر اینجا رو سرات بودی گوش کنید اون طرف هم رو سراتی سرات سقوط سرات نمی کنی یعنی اگر اینجا تو مسیر خدا و اهل بیت بودی اونجا هم مثل بنز رد می شی. با سرعت بالا سه سود. اگر اینجا کجکولگی رفتی اونجا هم کجکولگی می‌کنی. هیچ خم این طرفی میخواد گفتی بیرون این سرات زیر این سرات کنار این سرات هم چیه؟ جهنم دیگه از دره آتش شما رو عبور میدن از مو باریکتر از لبه شمشیر چیزتر. و این سرات همان تعادل است یعنی اصلا تو برای همین آفریده شدی منطق تعادل اقلانیته که این توی یه چیز مفصل گفتیم دیگه چون دقل و جه تا این جای کار پیامبر معرفی شد درسته از اینجا به بعد آرام آرام آمدیم دست گذاشت روی بیت حالا دیگه سراحتن ما از این به بعد وارد امامت میشیم از جای دعا به بعد اینا مهم بود پنجا جلسه طول کشید اما توی این پنجا جلسه که انایت داشته باشید ما یک دور انگار اصول و مبانیمونو چگار کردیم تو هیچ سخنرانی ما انقدر آی قرآن و بحث تفسیر نش... ن... نداشتیم برای اینکه خود معصوم اینطور فرموده هر کدوم این رو وقت نیست باز کنی به خدا اگر ما تمام کلمات مثلا رزوان رفتیم بررسی کردیم نه یا آیا آوردم مثلا شاید مثال ول مثلا رزوانه که تو باید حس داشته باشی فرداریز میخوایید دعا بخونی به اینجاش رسیدی بفهمی به, به کجا میرسی از اینجا باید در ادامه دعا میفرمات که فلم من قضا تایامو وقتی منقضی شد تاریخ تمام شد اون زمانی که گذاشته شده بود سر رسید این پیام داره ها که هیچ کس این دنیا نمیمونه اشرف مخلوقات بهترین هم رفته او هم یک دوره ای دارد برای زیستن در این دنیا همه میمیریم چرا اینقدر مثل کسایی که خالده در این دنیا داریم زندگی میکنی؟ این اون تفاوت اساسی و ریشه ما و پسر اموهامون یعنی بنی اسحاقه. <تصفيق> امیغن به نمردن فکر میکنن در به در دنبال اینن که علم و تکنولوژی در خدمت بگیرن که بشه هزار سال عمر کنن آیه قرآنه قرآنم گفتیم به چالش میکششه میگفت این کنتم صادقین و لاعلم و ظالمین اینجوری این طور نیست ما می‌دونیم که هر چیزی زمانی داره که تمام میشه منقضی میشه میگه وقت ایام اون اندازه هر کس اندازه‌ای داره تو این دنیا تمام بشه دیگه فرصت ببین این عمری که ما داریم خیلی ارزشمنده برای خوبی کردن برای اندوختن برای نزدیک شدن به اون مقام رضوان الهی فوق العاده عالیه برای همین می‌دونید در بی... در مؤمنین خدای سنتی داره بین مؤمنین که گناه عمرشون رو کم می‌کنه. دوری از گناه عمر رو زیاد می‌کنه. خدا میگه این سمرد خدا میخواد تو بهترین رو با راه عرض کردم. مثل بازیکونی که میگن در اوج خدا فیزیکون. میخواد تو اوج شما رو ببرد، ببرید با بیشترین ثواب بیاد اونجا که اونجا دوست داره خدا دوست داره بنده مؤمنش دوستش داره. دوست بنده اشغال کنه اونجا. تو بهترین حالت میگیردت وقتی بینین هنوز عمرش چیه برکات داره میگن عمر کنه. اما یه موقع اسمین این افتاده دیگه تو جاده خاکی داره بر میگرد چیه دندقب گرفت چه دور زد میگه بگیریدش یه شب قدر میشه یه امسال آخرش این رو بگیرید که داره خرابکاری کن. شهید قصتش جزاست ها؟ شهید زنده است نمیمیره شهید زنده است میبینی بر همی که بعضی از گناه ها مرگ فجعه میاره اینقدر اوضاع خرابه که اصلا هلی پلیس هلیکوپتر میخوابونه بزاید جاده بعضی میخوان بگیرن زنگ میزنن به پلیس را جلوی میگن آقای فلان فلان شده داره میادید دستگیرش کنید چرا بگیری جلوشو؟ چون میخواد خودشو به کشتن بده چون بد جوری داره رانندگی میکنه ممکنه آسیب بزنه به خودشو بقیه چون دقیقا جون اون آدم برات مهمه جلوشو میگیری ببین به یارو میگی کمربن رو تو ببند اگه کمربن نبندی میمیری میانی میخوام ببندم میگی جریمت میکنم پدر سوخته خیلی جالبه نمیگه کمربند، میگه موقعی که شما میگه بعد رانندگی می‌کنی به کسای دیگه هم میتونه آسیب بزنه. درسته. دیگه برای کیه؟ برای خودشه. برای دیگه نیست که. اینجا همون حس هر توی خدا داره. بعضی‌ها زمین می‌زنن پلیس رو،, پولیس رو بعضی تو این فیلم‌های خارجی این آمریکایی‌ها نشو میدن هلیکوپتر میشونن وسط جاده. میگه جاده رو ببندید. این خیلی اوره. این مرگ فوج است. این خطرناک. سرید بازداشتش کنید گواینامش هم باطل کنید این فقط جریمه هاشو داره زیاد میکنه یعنی چون دوستت داره تو میگیره این دوره‌ای که خدا به من و شما داده قدره شد یه فیلم ساختن که به جای پول به آدم و تایم میدن زمان میدن همینه این فیلمه از این جهت خوبه که اهمیت زمان و برش من شما یادآور بشه یه بار دیگه وقت کردیم اون مدیر از زمان یک و دو رو گوش کنید که چقدر ما زمانهای پرتی داریم که همینا میتونیم جمع بکنیم یا ایامی داریم یه تایی میداریم این اگه تمام بشه منقضی بشه هیچکس کس پیغمبرش رفته من شما که باید بیان قاز بچنون این یادش بشه جانه. احسن نقطه مقابلش این برای کفاره عرض کردم تاکید کردم که این برای مؤمنه نقطه مقابلش اون طرفه می‌بینی بعضی رو خدا بهش مهلت میده اینو دیگه خدا رسما باهاش داره دشمنی میکنه میگه به این عمر طولانی بدید گناه زیاد کنه سنت امحال و استدراج امحال از مهلت دادن میاد میگه بهش مهلت بدید بیشتر خودش رو خراب کنه استدراج این تدریجن درجه به درجه به درکه به درکه میرسه به درک میره پدر صاحب بچه در میاد سوق در درکات میکنه پس این رو ما دقت کنیم مستحبات امروز یاد میکنه ثباب امروز یاد میکنه خب داره اندوختش بیشتر میشه باید ثباب یه مؤمن همیشه بر خطه هاش قلبه داشته باشه اینا اثرات معنوی اینه طول عمره. خب فلما انغذت ایامه اقام ولیه علی بن ابی طالب صلوات علیهم و هم و الله. اینجا که ایامش به انتها رسید کیو علم کرد اقامه علی رو عنایت داشته در این دعا پیامبر اشاره میکنه ابتدا و انتهای امامت اشاره میکنه یعنی امام علی رو اشاره میکنه امام زمان بقیه ائمه رو با سرعت میگذره در حد عین الحسن و عین الحسین و عین حسین چرا چون میگه که چون ابتدا این امرو گفتیم، انتهای نام رو گفتیم کلش رو داریم. یعنی بازدهیم آمیم. یعنی بنایی بر مختصر بودن هم بوده. ابتدا امامت رو میفرماد، انتهای امامتی دبازدهیم آمیم. مونتا اولی و آخری رو دست میگذاره، وقت میگذاره بیشتر معرفی کنه. و آخری رو خیلی بیشتر. و اصل اوست اصل ایشانه. میفرماد اینا اقام ولی و نبی بن طالب صلوات که علیه ما و آل ما هادیان مفعول له برای چی برای اینکه اینا هادی باشن برای اینکه اینا هدایتگر باشن هدف هدایت مردم است باید باشن اذکان هول منظر چون او خودش منظر بود انذار کننده بود هشدار دهنده بود کی میگه پیامبر و کل قوم هاد و هر قومی هم یک هادی و هدایتگری دارد این رو با... تا اینجا توضیح میدم منطقه ولمله امامه و حضرت و حضرت من منکنت و مولا فعالیون مولا خب اینم اینجا فکر نکنم به این جلسه قطع بده که اصلا حدیث قدیره و خیلی مفصل آیات اینا داره اما اینجا میخوام اسکان اول المنظر ولی کل قومنها داره تموم کنیم این جلسه انشالله بتونیم پس اون زمانی که پیامبر بود تمام شد مرکز هستی بود جسم ایشون دفن شد محل رجوع مردم لحظه فیزیکی دیگه نمیتونست باشه هرچن اثرات معنوی و حضور و وجود ایشون هست که اینجا دیگه امام علی آمد که هم دوست او بود هم ولی خاص او بود و هادی مردم شد پیامبر این نبود که اقام علی و امیران فقط در قدیر بشه اشاره کنه فی و کس دیگره. در جاهای مختلف شاید یک نفر وقت بگذاره مستقیم غیر مستقیم یک لقمه غذا میخواست بخوره به جانش امیران مونه شروعه بعضی چرا جای دیگه نگفت مزخرف رو کی گذاشته تو زنیتون چرا ولی گفت یه کلمه دیگه استفاده نکرد که معنی دیگه پیدا کی گفتین رو کی به تو گفته به تمام خلیفتی وصییت همه مدل‌ها فرموده امام تک تک این اینا رو استفاده کرد کی این هیچ اینا همینو خوندن کی گفته شاید یه نفر وقت بذاره اینا رو جمع بکنه شاید نزدیک صدها مورد باشه که پیامبر به هر طریق ممکن به امیرالمومنین اشاره می‌کرد اصلا هر بار که اشاره می‌کرد اینا بدتر دیگه مثل حضرت یعقوب که به یوسف اشاره میکرد برادراش آتیش گرفته بودن فهمیدن؟ مثلا تافته جدا گفته است <تصفيق> مگه میشه صحابه پیغمبر مثلا حسودی کنن مگی میشن چی؟ بچه های پیغمبر میتونستن بکنن تو قرآن که قرآن نمیخونید خدا وکیلی ده تا بچه پیغمبر خدا لغمه و نطفه یعقوب پیغمبر خدا رو دارن داداش خودشونو مینازن تو چا میگم بکشنش لاوی اگه اونجا نبودن خواسن بکشن لاوی جلویشون گیره اول بچه بود که اصلا نبود تو بازی اینا تو گروه اینا تو گنگشون نبود اینا که رفتن هم لاوی هم کاری نکرد وای میستاد چوب میکشید دفاع میکش شمشیر میکش نه بابا خاطر همین کارم هم همین چیه خود مان کشته شدن شد خدا نسل نبوت بشته دیگه حضرت موسی هارون از نسل لاویان الان اینا به آخونداشون هم میگن لاوی دیگه تمام کهنها کاهنها، روحانیونشون از لاوی ها هستن یه فامیل معروف یهودیست دیگه که عربیش لیفی میشه همی میخواد بدونید مثل ما چه نقش سادات بر ما دارن؟ اونا اینجورین. که وقتی هم رسید به حضرت موسا و از شاخه هارون ادامه پیدا کرد از شاخه موسا ادامه پیدا نکردینه باز یکی دیگه شباته هم بیرن اونا حضرت حارون برن وقتی یه نفر میگفتی هارونی، یعنی بچه پیغمبر یعنی مقدس یعنی گناهکار نیستی امامزادست فلانی برام حضرت مریم وقتی بچه به بغل دیدن گفتن یا اخته هارون نکنه اسم داداشش هارون باشه تو چرا؟ تو که این کاره نبودی تو که بچه پیغمبر بودی تو که انقدر خوب بودی تو که قدیسه بودی تو که بچه مثبت بودی اینجوری بگیم چی بگم نمیدونم بله این نبود پیغمبره تو هر جاهای مختلفه از روز یا الدار یوم انزار از همون روز اول که بنظر اشیته کل عقربین فکوامیلاتو پیغمبر جمع کنه اینا شروع کن بهشون یه شامیداد داد و گوشتی درست کرد و نمیدونم فلان من پیغمبر شدم خبر داد و همه زن خنده خود از من خواسته اینو اعلام کنم از همون روز همون جا هم خودشو معرفی کرد هم اخی و وسی وسیع من ها. برادر من ها. بچه چند ساله مثلا 13 ساله نوجوانی که نشباش ساده با. اونجا بگه ابو لعب بود ابو جلب بود ورگشتن به پدر عزت علی به عزت عبو طالب علیه السلام گذن که مبارک بشه تبرگرز میکنیم یه عزمت باید بچه بچه 12-13 سالت باید تباییت کنیم به یه شیخ کبیری به آدم موسندی مسخرش میگردن برای چین رو میگفتن یعنی کاملا برداشت و دریافت نشه من بعد اول بعد همین آقا رو پذیر میونه پیغمبر بعدش هم او جانشینش هم تعیین کرده اینا شیعه نداره ها اینا من نمیدم چرا نمیبینن اینا همه رو قبول دارن همین رو شنیدن یه قبیله اشیری اومد با پیامبر بیعت کردن بعد گفت ما قبولت میکنیم به شرطی که بعد تو حکومت دست ما باشه پیغمبر فهموند نمیخوام بیعت کنید برید خدا تعیین کرده جانشینمو اینا اینقدر اشاره داشت عقام علی بارها بارها بارها بارها میرفتن بیرون قدم زدن چهار تا درخت میدیدن پرینبر یا نکته بر میرن سوال می سآل میپرستن پرینبر میفرمود اونی که داره کفششو میدوزه اونی که اینجوری راه میره اونی که اینجوری غذا میخوره اونی که اینجوری میشینه در خونه شون را دست و کل درها بسته شدن الا بابه دره که به مسجد بامی شدن بعد چیکار می‌کرده رد می‌شد خم می‌شد به سمت اون در به سمت اون خانواده سلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله نماز شبشو پشت در خونه می‌خونه نماز اصلی رو تو مهراب ببین اینجا مهرابه دیگه خب فکر کنید اینجا اطراف مسجد دروامش بود به مسجد مدینه مثل شهرای شمالی بود های شمالی که هر کسی خونش کنار باقشه نخلستون داشتن یه کله جمعیت عشیره نمیدونم فلان اوسی‌ها مثلا این طرف بودن یه بخششون یه بخششون از بخش یه جا دیگه مثلا بر مسجد می بری اخونت 3 کیلومتر 4 کیلومتر تو راه بودی اذیت می‌کردین اونا رو که میتونستن شروع کردن کنار مسجد چکار کردن خونه ساختن یه دری هم داده بودن تو مسجد نماز هم می اومدن مثلا نماز ظهر و رو می‌خوندن بعد می ما بریم دوباره برگردیم ولش کن همینجا یه چرت می‌زنیم و دوباره میایم یه همچین نماز می‌خونیم مرکز جامعهشون شده بود اون مسجد بعد یا آیه آی همه در رو به تحتیل شد ببندید در رو الا بابا بعد پیمبر فرض بفرمین، اومده نماز شباش داره میخونه زودتر میمد برای مسجد دیگه قبل نماز صبح ازت میومد مردم هم میمدن نماز شب بخوندن میرفت کنار اون دره نماز میخون چیچی رو باید میگفت بعد اینا همون دره رو آتش زدن ما بعض ما نمیفهمی شدت واقعی چی بوده و شدت روشنی ماجره و وضوحش چقدر بوده بعد 1400 سال بعضی با سایه نازن اینا نبینن نه به همین وضوح بوده میگه نه ماه برای تو خوندم شیش ماه دوازده ماه چقدر هر نماز صبح میگه من موقع مدینه بودم راوی میگه هر نماز صبح ما خم میشد به سمت این در السلام علیکم یا اهل ویت نبو عجیب بوده پس این اقامه یا اقامه یا همینجا تو قدیرهایی قدیر رو دارن میگن نه عزیزم ما ما قبل قدیر کلی حرف داریم او رو معرفی کرده بود من این زاردهنده من اومدم ببین این زاردهنده یعنی چی گوش کن این زاردهنده به بقلهای جاده میگن میخوای بری بیرون دیدی از این ویبراها گذاشتن شروع میکن زیر لاستیک صدا میده دیگه بخوری به گارد ماشین داغون میشه همون خودت سالم بمونی نفت های دره این انذار کنار جاده است هادی کدومه خط وسط جاده رسول کارش اینه که میگه بیای تو جاده اینجا به بعد دیگه جاده نیسته بیرونه ها اعلام عمومی میکنه میره سراغ من مردم طبیع و دوار به تب در خونه همه مردم میزنه خبر بهشون میرسونه اما حادی کسیست که خط وسطش نشوته. بر همین اصل امام که اصل کعبه. اصل مسائل کعبه است تو باید سمتش بری. پیامبر هم منظر بوده هم هادی ها، امام هم بوده ایشو. از اینکه از بحثی ما بردارن اهل سنت داریم که اورا امامت پیغمبر قبول ندارن. میفه پیغمبر بوده. اصلا واجبه برای امامت توی دستگاه کلامیشون به این شکلی ما داریم تعریف نشده. وقتی هم ازش رو 124 بقره به من بگوینم ابراهیمی که نبی بوده مرسل شده اولول ازم شده خلیل الله شده چیه تو 99 سالگیش ایش موقع سربوریدن اسمایل میگه تازه بهش میفهمم این نی جایلو که لناس اماما بفرمایید این چیه هیچ جور این جواب نداره هیچ جوره من خوندم جواباشو نمشن یکیشون از اون قدما. 12 تا دلیل 14 تا 12 تام چقدر سرهم کرده بود اصلا من میکش می‌کردم که حجم مال کشی دیگه به کجا برسه بعد آدم حواس و آدمی که مثلا داره آیه‌های قبل رو می‌خونی به یک نکات ظریف و دقیق اشاره می‌کنه اینجا اصلا دوست یه جوری دیگه باشه آنتنش یه جا دیگه گرفته عجیب مش اگر کسی هم بیرون این مسیر جاده باشد گوش کنید اینجا میخوام نکتی رو بگم این همه این جلسه جوابه خیلی مهمه اگر کسی هم بیرون این جاده باشد چیست؟ دو حالت دارد خوب گوش کنید همه هم اینو بلدید و واجب بوده اینو بلد باشید خوشبختانه یا متاسفانه واجب بود اینو بلد باشید چون خواستید گفتید اهدن سراطل اون انعمت. تاییش میری با به رزوان و خدا غیر المغضوب علیهم ولا ظالین دو گروه یکی ظالین اینا دنبال راه هستن اما گم کردن مکسه مهمی ها. گوش کن دنبال راه هست اما گم کرده جانش ذاتش راه دوست هست هدایت دوست است اما گم کرده اشتباه داره داره میرسم تو باقالیا یکی دیگه نه مغزوب علیه اون عوضیه اون راهو میشناسه خودش هم صد راه میکنه شیطان مغزوب علیهمه چرا؟ چون میگه لعقدن علی سرات من سر سرات مستقیم میشینم هیچ گرات نشه فهمید چی شد و پیروان شیطان این نیست که نداند امراس وقتی با معاویه داره معامله میکنه میگه آقا میدونی من بابت حس و علی چیکار کردم من میدونی بر پس زدن حسن چیکار کردم من آخرتم و فروختم لغالی پول خوب بده این میدونه اون بابایی که میاد بعد زور آشورا بالا سر آئله اهل بیت با گریه میگه خودت گوشواره رو به من بده من نکنم میگه چرا گریه داری میکنیم میگه ما خوشما آئله رسول الله اید من میدونم میگه بعد چرا میخوای این کار کنیم میگه من نکنم ایک دیگه میکنم من نمیخوام اون کسی باشم سیلی میزنم به زور گوشواره خودت بده. یعنی میداند اینجا یک نکته مهم میخوام برای شما حل کنم بحث پیش میاد ببین نه فقط بنشیه و سنی گوش کنید تو خود اینجا باید خیلی دقت گوش کنی شما هم که فیلم میگید با دقت می منم سعی میکنم کنم با دقت بگم تمام بیماران روحی روانی هم هستن که بندگان خدا منتظرن کات کنن اینا رو من لحاظ بعد بکنم خیلی کار سختی در پیش دارم خب اینا داشته باشید. بحث بر سر شیعه سنی است تو خودت یک برداشت علمی داریم از یک مطلبی که آقا فلسفه خوبست یا است. این منجر به دو شقه شده برخی از علمای ما فلسفی هستن بعضی ها تفکیکی قائل بر تفکیکن درسته دعواشون حل شده؟ نه اولی مثلا خودم بذارم پس این است یعنی یک موقع شما تو شاهراه با یه نفر میای میگی میگه این جاده یا اون جاده یه موقع تو کوچه داری جدا میشی یه موقع است توی کوچه توی بمبسته میگه کدوم خونه درسته؟ این خیلی مهمه که کجا با چه نیتی چه کسی جدا یک موقع است بحث بر سر بحث علمی است که خیلی جا همینه بعد این علماء میان با هم بحث میکنم منم تا تا الاماشالله از این بحث خبر دارم خوندم، مطالعه میکنم میرم بعضا خدمت میرسم، میشنوم ازشون هم با فلسفی نشستم، هم با تفکیکیان نشستم حرفشون رو شنیدم لب مطلبشون رو شنیدم اون چیزی که نمیتونن حتی تو بالا منبر علنی بگن و شنیدم من شنیدم که کسی در مورد کسی دیگه برایش گفته این نجسه من شنیدم در مورد کسی به در دروسی گفته این کافره منو شنیدم میخوام بگم تا این مرحله نمیشمیره باشه اینو بعد میگفتم با عنوان مقدمه که بگم بالا بحث بس بر سر این است که برادر عزیز اهل سنت ما جز کدام از این ها قرار میگیرد گوش کن مثلا فرض کن تو همون بحثه برمی‌گردیم می‌گه می که این روایتو نخوندی این عالم تفکیکی بین عالم فلسفی یا برعکس میگه نخیر این روایت سندش درست نیست مثلا قبول ندارم اینو فلانی تو راویانشه تو رجالشه یک کذاب و مفتر نه اصلا این مرسله شلون کو بحث کردن یه سوال اینجا اگر را سند درست باشه چه ما قبول میکنی یا نه اگر قبول کرد او راه ها گم کرده اگر قبول نکرد بازم نه این نیست چیزای دیگه هم دارم مثلا شروع کرد مالک کشیدن این قضا مغزوبه این دنبال حقیقت نیست کافره کافر یعنی چی؟ عرب به کشاورز میگه کافر عرب به موشم میگه کافر کافر یعنی چی؟ کسی که پوشاننده یه چیزیه چون پوشاننده حقه بهش میگن کافر مطمئن شدید؟ او دیگه پوشاننده حقه خودم به کافر حقه با باطل پوشون سور بقره قراره تلبسونه حقه قبل باطل قراره میفهمه و انتم تعلمون وقتی میفهمه و انتم تعلمون یعنی چی؟ یعنی مغضوب علیه بعض ما میگه یه نمیدونه لا یعلمون علمش ندارن خبر ندارن این بدبخت ها نه و انتم تعلام افلا تقلون میدونی عقل نداری عمل نمی کنی خیلی بیشوری خیلی بی نفهمی این تو خبر نداشته باشی اینو داشته باشی حالا صحبت سرینه اون برادر اهل سنت من به من اینو میگه منم به برادر عزیز اهل سنت هم اینو گوش کنی شیو با هم گوش کنید خوب گوش کنید شما،, شما شما شیعان پدر کشتگی خاصی با صحابه پیامبر دارید که برخیشون رو قبول ندارید و حتی تو قلبتون مثلا احساس دشمنی هم میکنید نه نه فامیل این وریام نه فامیل اون طرفیام من علمی از تاریخ دارم چیزی به من رسیده است تحقیق کردم پسجاش کردم فلان که این فردی که برای تو مقدس است برای من مقدس نیست برای اکس تو حصه براعت هم دارم نه ولایت درست شد میگه چرا میگه این اتفاقات میگه این اتفاقات روخ نداده است داری اشتباه این شد بحث چی؟ علمی سآل بعدی بلافاسه را اینه اگر درست باشه چی؟ تمام گرفتی شد میگی به خانه از زهرا این شخص ایکس و حمله؟ نکردن درو بابا اینو با من دختر دادن دختر گرفتن این حرفا چی چیه پیامبر کدوم قدی رو مگه من دوست دارم دعوا بود آقا آره حضرت علی اصلا خوب بود بهترین بود جز بهترینا بود حسودی می‌کردن بابا یکیشونو کشته بود تو بدر عم یکی دیگه حالا عمر که نکشت بابا مثلا عمو یک دیگه اشونو کشته تو یمنم خندق نمیدونم چه احقادم بدری و خیبری تن و حنیینه مگه نمی‌گیید اینا کینه و قدرت داشتن دیگه داشت شروع بشه پیامبر فرمود من که دنیا دارم میرم آقا شما مگه منو پیغمبر دوست ندارید؟ من که میدونم منو شما شما منو دوست دارید غالبا. اگه یه چه خاری تو پای من بره ناراحت میشید فلان ها من بهتون میگم بیاد قدرت و با علی بزاید کرد. بیاد حماتونی سه روز اصلا همین همینجا وای میسیم. بیا همه نفری با هم دیگه یه بار یا بر با حضرت علی خوش رو باش کنید نه تمومش کنید. من دوست ندارم از این دنیا میرم بین شما قدرت بشی پدری که موقع وصیت داره میکنه پسراش باهم دعواییه میگه مگه من دوست نداری دو تا بیاد به خاطر من بام یه روسی کنید. فهمی تو ذهن او چی میگذره؟ اینه میگی باش. اوکی؟ باش اگر درست باشه یعنی این ولایت باشه حالا ما کلی بحث داریم آه. ما میریم بگردیم ببینیم کدوم درسته بیکار که نمیشینیم اون موقع چی؟ اون موقع دو گروه میشن من فرسیدم میگم خیلی به من خیلی مناظره اینجوری داشتم لطف خودم خیلی ها الحمدالله سوال میپرسم میگم خود تو شما میگین حمله به خان از زهران نبوده میگه نه میگم اگر بوده باشه چی میگه نبوده میگم بابا دنیا خیالی تو جزیره ایکس شماره 92 تو د... کهکشان مداد به من بگوی همین چه اتفاق افتاده قبول داری یا نه میگه نه کار خطای بزرگی نبوده اگه اینجوری پاره تن رسول الله رگ زده باشن اشتباه کردن میگم تمام شد حالا بحث بعدی ما چیه بریم بحث بعدی زات تو ذاتت ذات پاکیه تو حقیقت جویی تو با راه مشکل نداری با هدف مشکل نداری که اکثریتی ننامی دونی که تو اینا کم میزنی کسی مثل ابن تیمی پدر سوخته باشه ابن تیمی میگه چرا رفتن درم لغت شکوندن رفتن تو میدونی چرا چون علی و فاطمه انوال بهترمال دوزیده بودن برده بودن تو خونه قایی میکردن او ناسبیه او همون مغزوب علیمه تو شو چه نسبتی داره میده اون حرام لقمه ای که قاله علی رو در روایت برداشت برد تغییر داد کرد بالا علی زبانم لالل ببخشید بالا یعنی بول کرد یعنی ادرار کرد اون کسی اون حرام لقمه ای که مثلا علی برای من مسئله هارون است برای موسا رو هارون رو کرد قارون اون مغظوبه علیه شدید؟ پس بحث گاهن بحث علمی است شما چند تا سنیدی در یزید خوششون بیاد هیچ کس اما بعض از این وح... وحابی ها میگن یزید رضی الله عنح یزید خدا ازش راضی باشه لعنت خدا برو. بینید چی میشه این همون فرق مغضوب علی هم اینجا دیگه بحث علمیه همونجیه خودمون تو خودمون بحث علمی داریم بریم مثلا فلسفی و تفکیهامون به این سه مشارب کلامی مختلف فقط این نیست علامه طباطبایی اومده بود تبریز به فاق وامیلش سر بزنه صداش کردن باباش بوده کی بوده بهش گفته نه پدرش نبوده کسی نمیاد صداش میگم میگه رفتی بولند شدی رفتی. رفتی اونجا نجف بری درس کفر میخونی اومده زن زیرب زده بودن درس کیو میگفتن آیه قاضی رو گفتن تقریبا برای تک تک شاگردای های قاضی این کار کرده بودن برای بهجت فلان همان هم. ده خانواده و همونام. رفتود هاشون رو پیدا کردن شعرهای خودشون زیراب زده بودن. فکر نکنید فقط زیراب زنی مال الان. تا با انصافا اونها انگیزه بیشتر برای زیراب زنی داشتن با وجود نبود با نبود شبکه‌های اجتماعی سخت بوده مثلا هواپیما رو با خر بولا می‌شد می‌رفت چه زیراب بزنه برگرده. عجب خری بوده یعنی خداوکیلی چه حس و حسلی. چالبته ماجرا انگیزه شخصی نیست چون میگن ایشون یه روزی کفاشه یه جوری اشاره می‌کنه میگه نمی‌بینین اینجا نشسته سر کوچه میگن بله میگن کفاشه میگه این یهودی بود اون زاخسیه جلسات ما رو چوب میزد. یعنی اونا فهمیده بودن که از اون کلاس کیا میخوان بیان بیرون اینا رو دیدی تو همین جای خود مش جنگو جنگو دعوایی درسته نبود خدا رحمت کنه میرزا شیرازی رو وقتی فتوای توتونه تنباکو رو داد یه که دیگه از علما رفت بالای منبر قیلیون کشید رفت بالای منبر قیلیون کشید حرف حرفمون نیست پس اینو که خودت داری حالا ما توی کوچه آه. جدا شدید بیم اقبتر توی خیابونه درسته؟ هدف اینه گمراه هست یا مغزوبالایی هست حالا اون برادر سنیم به من میگه آ شما مثلا برخی از همسران پیامبر رو علاقه بهشون ندارید برخ صواب پیامبر علاقه بهشون ندارید به خاطر احترام به ما, ما هم توهین نمی‌کنید. همین محبت شما رو نشون میده، همین نشون میده شما انسانی، اما نشون می ده که شما دو لج و بچه بازی به این شکل نیستید. چرا قبول نداری؟ قبول ندارم چون زن پیغمبره؟ بچه اون که همسر پیغمبره قبول دارم. <تصفيق> پس این نیست. قبول ندارم چون صحابه پیغمبره؟ میگی بعضی از اونا اینو می درسته می‌کنن دیگه. میگه اینورا همسر پیغمبرم دادن توهین می‌کنن یعنی توهین به خود پیغمبره این همه آدم این همه عرب رو کره زمین همه فلان چه گیی داده به این آدم چون صحابه پیغمبره مطلقا ما چه انگیزه شخصی می‌خویم داشته باشیم مثلا ما که سیدم نیستیم که دیگه هیچی بر ما چه فرقی می‌کرده اصلا ما که ایرانیم که دیگه هیچی <تصفح> به اونجا اشیره بازی انقصارم نداریم با چه انگیزه اینا یکی خوشم یکی خوب بدمون بیاد پس تو هم بدون هیچ قصد و بگید نیست ته بعد از نظر تو من چی باشم گمراه اینه فقط حدیث منزلت را پیامبر فقط هم هارون و موسا را. علی برای من به منزله هارون برای موسا 25 جای مختلف گفتم یکیش روز قدیره آخر روز قدیب ها 17 صفحه چیزه زیارت خطفه قدیره چی تو ذهن هامون من کن تو ملاف این تو ذهن ها سبچه ببین رهبر انقلاب برای آی رئیسی ما سخنرانی کرد درسته؟ کلی صحبت کرد. چی تو زهن مون مثلا؟ احسن دلم برای رئیسی سختم این جمله شد متواتر بقیهش رو باید فکر کنیم دیگه چی گفت؟شون کلی مطلب گفتن پیامبل خطبه می خون اول کلی بحث توحیدی میکنن بعد به مردم علام میکن خدا رسما منو تهدید کرده یا اینو بهتون نگم. سه دو مرتبه قبل از اینم اینجا خدا به من گفت در فلانجا و فلانجا. خب و من وقتی گرفتم از جبرئیل گفتم بب سلام برسون به خدا بگو وقت میدی من یه جا دیگه بگم این دفعه آمده اگر انجام ندی فهما بلده رسالت هم رسالت تو انجام ندی سراحتاً پیامبر میفرماد 23 سال اعمالم اگر اینها را نگویم حبت شده است 23 سال پیغمبریم نابوده اگه نگم توضیح میده چرا نگرانم میگه میترسم از اون منافقایی که توش عمان <تصفيق> اشغال میکنم اونجا همونایتون که این کارا رو کردید همونایتون که در وسط این آیه ها آمد همونایتون که به من میگفتید اذن اشاره کرده پیغمبر تک تک اینا رو خطبه قدری از نون شب واجبتر بخونید اما چیمون دلم بره رئیس سختش <تصفيق> چیمون من گفتم ملا فاز علیونه این تو ذهن ثبت شد تک جمله اصلی اونجا اینه و فقط برید ببینید تو بقیه فراس ها چیه آقا امام شماست بعد از من رئیس شماست اصلا اینقدر اشاره اینقدر اشاره مستقیم هیچ جونیم جماله کشیم و حدیث قدیرم فقط 80 نفر از صحابه نقل کردن 120 و از تابعین بالای 15 تا رو میگن متواتره خبری فقط یکی دو جلد کتاب نوشته برای کسایی که قدیر رو ننگو کردم من القدیر علامه امینی رحمت خدا بر اون آواز 13 جلد کتابه به شبهاتش و نکاتش و فلان پاسخ داده میشه اینه ما امامت رو بفهم کنم مثلا یعنی شد این شدم یا آسیب شناسی میخواد چی شد هزاران نفر گوش کردن زدن زیرش فقط علل حساب من بخوام بگم میدونی چرا اینجوری شد همون جوری که 600 هزار نفر زدن زیر کاسه و کوزه موسی و هارون علیه ماسلام من نکردن این کارو. این دیگه آقای قرآنه دیگه ببینید یه حدیث و قدیر و نمیدونم اتفاق و این بوده و اون نبوده نیست قرآن خط تو درسته برو بخون ان الغومه و کاد یقتلونی مگه میشه صحابه پیامبر انو ببینن بابا به خدا پیامبر ما که نه عصا اجداش شد نه آب شکافته شد نه از آسمون قرباقه بارید نه آبها خون شد نه ستون آتش در من نه کوه تیکه شد تا چشمه ازش جوشید اونایی که اونارو رو دیده بودن انقدر خوشکل زدن زیرش انقدر فنی، انقدر تر تمیز بیرنگ کار رو دارو بردن. بعد تو انتظار داری اینا نزنن بعد چی؟ موسا با اونا جنگیده بود بگو با خودشون نه جنگیده بود فقط با فرونی جنگیده بود هارون شمشیر به دست بود بره به جنگ باشون نواله چوبی بنده خود دستش ده تومنه احقاد بدر بود، خیبر بود، هنین بود، خندق بود اینا هم تازه نبود دشمن مشترک آدم رو مجتمع میکنه فرعون تازه اینا رو مجتمع کرده بود اون پدستوختوازی بازار در اینجا اون دشمن مشترک هم چی؟ نیست یه دنیای فیزیکی زمینی کاملا منطقی برای تحلیل کرد قرآن می داداش که فقط موزا هارون عملا مونده بودن در عمل ففرق بین نوابین القوم و الفاسقین این بنیستر همه فاسق منو داداش شما اینو جدا کن تنهایی اینجور شد اونجا میشه اینجا نمیشه اونجا صحابه اون پیغمبر مثلا صحابه این پیغمبر چه فرقی بد داشته باشن پیغمبراشون فرق دارن چون پیغمبر بالاتر مثلا صحابرا هم به خودش میکشه بالاتر اینا دیگه بحث علمی است. بحث علمی است. برای اون کسی که گمراه مشو نگاه کن. اینجا تابلو ندیدی نگاه کن، لا این درخت آقای می شده. بیا ببین سر جاده بوده تو ندیدی. ما دیدی ما عکس گرفتیم ازش. برگشیم دندقم نگاه کنیم کجا بیاد نشونم بیا بریم بزن نشون بده. این اینا این بحث اوناست. میگه مگه میشه این همه آدم گوشام بعد بزنه زیرش؟ آره عزیزم. هم قرآن بخونی کی شده؟ تازه شرایط به مراتب برای اونا چی بوده؟ برای شما خیلی راحتتر می می‌شد از زیرش هیچ کدوم حجت‌ها هم نداشتید. پیامبر ما با اطوفت مهربانی انقدر حرف می، گوش میکرد بهش می‌گفتن اوزون اینا طمع داشتن این کار همینجا همین آینه نشو میده ان الله ما من الناس خدا حفظت می‌کنه یعنی نگرانی داشت جامعه و هم نماز خیلی مهربان بوده رحمتا للعالمین بوده حضرت موسام همینه اما خیلی از اثر انداخت که خورد حضرت موسی همون یکی کفگرگی زده بوده آتو خورانون <تصفيق> از او باید بیشتر حساب می بردن اگه اگه پیغمبر بخوام بترسن <تصفيق> آقا عبارتی که گذارم یعنی کفگرگی رسمانش مشت نیست یعنی میخواست بگه هلات یه یعنی حضرت موسی ها تو از این قومش هم بینی؟ هالیوود براشون محمد مو... اثر میذاره تو اون دینی که توش نفس کشیدی رسانه یعنی ای این قوم میبینی اصاجده ها شده چیزها رو دیدن هالیوود سراغم ما موجزه هم کتاب علمانو دنبال کتاب و بحث و درس و بحث و. اونا خاخاماشون کارگردان سینما اگر تبریق قصتش رو باز کنم که اصلا سرگیجه میگیرید. آره اون میشه همین که آ... اگر عالم بود و گمراه که نمیشه پس میشه خماغذوب علایه یه موقع میگه ناآگاه گم گم یعنی ناآگاه تموش جان اون که گفتم مفصل گفت نظر شیع در مورد حاکم ظالم شیه به هیچ فش قبول نداره بردارن اهل سنت رو میگه هر هرچی باشه قبوله مستند سعی بخاری مسلم دی از سه های بیرون نمی آیی <تصفح> انکان فاسقا جائرا فاسق باشه جائر باشه ظالم باشه خارجی باشه انکان عبدن حبشیان برده باشه حاکم باشه بذار رو سرت حق نداره قیام کنی جلوش که اون دنیا جواب بده پوستت کنده فقط حواله اون دنیا میده بعد باشه خود خدا, خدا میدونه با چکار کنه این دنیا رو بده به اینا راه همین دیگه سر ماجرای مصر ریختن به هم دیگه اهل سنت از نظر فقهی کلامی ریختن به هم می ما الان چه جوری علیه چی بود قیام کرد مرسی مبارک علی حسینی مبارک چرا قیام کردیم سری دانشگاه آره من وسط عربستان یه جلسه گذاشتن گفتن یه کارش حرام شرعیه کمک کنید کله پا <تصفيق> سری 11.1 میلیارد دلار عربستان فقط پول گذاشت. 11 میلیارد دلار خیلی پوله گذاشت کله پا کردن مرسیو. الان نتیجه هم همینه دیگه. تو هم اینجوری وایسادی میگی فرق شیعه و سنی چیه اینجوری؟ داره نظر از امام حسین اون قیام کله ای کرده است. بله و اینه من تو مالون روزم اونجوری بودی. مسباح الهدى و سفینه نجات یعنی کاش نذاشتیم کسی برداشت دیگه کنه. باید خون به پاشه بازم وقا روی رو لنز دوربین. باید خون به پاشه تو لنز دوربین که ثبت شه. وگرنه ببین جلو صد هزار نفر دست بردی بالا منظور یه دیگه بوده. مثل زیرش این قرارات تو این بحث سیاسی خودم پیش نمیاد. همین مملکت خودمون. مثلا این رهبر انقلاب در مورد در تایید یه نفر داره یه حرفی میزنه. اونا که باش مخالف سیاسیان اصلا دیگه مخا نشنون دیدید؟ اون بخش دیگر رو میارن چه مثلا یه جمله دو پهلوی رو پیدا میکنن سریع اون طرف فرار دارن میارن میสารو فکر کنم خیلی چیز عجیبه اون موقع برای در من بحث دینی نبوده چون تو حکومت دینی داشتن نفس می‌کشیدن فکر کن مثل امروز بحثو چی می‌ديدن سیاسی یعنی حضرت علی هم یه آیت الله میدونستم مثل بقیه آیت الله یه صحابه مثل بقیه صحابه که ازش کینه داریم اسادت هم داریم سن هم به عربیگری ما نمیخوری عین چی نصف تو سی خورده سال بزنیمش بهش رئیس کلمو خب پیامبرم تمام اینا رو قبلا شیکونده مثلا اسامه 19 ساله رو گفته فرمانده سپاهتون باید برید پیشش همه رو ببین اگین بفهمی که پیامبر پیامبر مگه جایی بود که اشاره نکرد باشه مگه اصلا تمهیدات رسول الله برای خلافت خودش صد جلسه سخنرانیه از روز اول اینجا اشاره اونجاش نشد از کانه ها و المنظر بل بله دم بگیم شالله جلسه بعد ببخشید دیگه بین بینین فاصله میفته درگیریم دیگه میبینید چه وضعه هر روزم هم های عجیب قریبتر تو دنیا و چی؟ و همینجوری این نمونه دیگه شمینه آزه من نوشتم من نوشتم و من خصوصی جواب بیافتنم بینه نه با یکی دیگه است عجب. امن نمونش خود پدراتونه بیامرزه همین همین الان حیا حاضریم این همه رسانه مسانه و فلان چیزا تو چرا کشش نمی‌دونم نمیخوام کشش بدم نمی‌خوام خوب نیست برای جاممون اسرائیل الان درگیر داده جنگ با اسرائیلیم یه د حق و غضب و کینه های سیاسیشون شون هنو خالی نمی‌کنه دی دنبال بهانند دیگه همین آی همه پزشکانم هم دیشب هم توی تو خوب برش دادم بار نکاتی در مورد حسف دلار گفت عالی بودیم راه بردین اگه انجام بشه تمام است آمریکا واقعا میگم این عرضز بریکس جدی گرفته بهشکار است آمریکا تمامه. آممثل ارز طی اروپا است مثل, مثل یورو فلان اونام ادعا کرد ما جداشیم. اروپا زیل آمریکا اینجا روسی داره با امریکا می جنگه. با اروپا داره می جنگه. چین نقطه مقابله ایران درگیریم الان تمام مشکا بمبا که دا ریخته میشهز آمریکایی. حتی ای بس هواپیمای آمریکایی موشکی آمریکایی رو با اطلاعات آمریکایی با محور آمریکایی داره می‌زنه. از کجا اساساً خلبانش هم آمریکاییه؟ حالا خرابش اسرائیل بشه خیلی فرق میکنه نه دیگه. تو این هیروبیت تو این درگیری آقا درست نیست. من اینو میفهمم فرق ما با این آقایون اینه که ببین اینجا خانوار نگفتم چون خانوار کللا خوب فارسی کردم. <laughs> فرق ما با این آقای این که ما زیر شمشیر بچه رو باید ول کن اونا هم میدونن این اخلاقمون ها؟ میدونن انقدر شده به خدا قسم دارم ما همون جلسه میذارم میگن شما جواب نده خب اونم می گید. به اونم میگید؟ به اونم میگید جمع کنن این آره؟ یه شما جواب خوب نیست بیدان فقط به من این طرف هم. گفت دعواشو بینیدو تا زن که بچه مالکیه؟ نا نمیدن نسبت دادم برمیرد م شمشیر به نسوش کنه نسوش مال تو نسوش مال مادر واقعی بیل کرد بچه شو. نه نیست من نوکات دارم مطالبی هست مستند با شاهد بر براتون بگم باورتون هستن نمیشه که چه ها نکردن خب من مثلا اعلام که گفتم من حاضرم بخش از اون بخونم بر مردم بگم بخون گفتن نه نود بخونم خود خب قرارت خودشون رو میگید میگیم خو... می خدا آخر قوتون را خاتم خیر کنه ان شاء الله اللهم <تصفيق> عجل وليك الفراج و لا وفیت من خیر ابوانه وان صاره و المستشهدین بین ده تجل فراز قطب امکان کان حضرت الصاحب الزمان صلوات نطف